گفتم ای سلطان خوبان رحم خون بر این قریب گفت در دنبال دل ره گم کند مسکن قریب گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار دار خان پروردی چه تابارد غم چندین قریب خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم خرز خار و خار سازد بستر و بالین غریب ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست خوش فتادان خال مشکین بر رخ رنگین غریب مینماید عکس می در رنگ روی محبشت همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب بس قریب افتاده است آن مور خطگرد لوخط گرچه خط. نبود در نگارستان خط مشکین قری گفتم ای شام غریبان تره شب رنگ تو در سهرگاهان پزر کن چون بنالین قری گفت حافظ آشنایان در مقام حیرت آن دور نبود گر نشیند خسته و مسکین قری